بسوی نور قسمت سی و یکوم. بسم الله الرحمن الرحیم سلام و قسمت سی و از مجموعه گفتگوهای صوتی بسوی نور رو تقدیم شما شنوندگان محترم میکنیم در خدمت جناب آقای محمدی هستیم سلام ارزم کنم خدمتتون سلام علیکم و رحمت الله در خدمت شما و شنوندگان محترم هستیم. مخالفین اسلام یعنی افرادی که داعیه بیدینی دارن میگن که دین اسلام مروج خشونت و تروریسمه. میگن که اسلام دین جنگ، تعدی و حتی تجاوزه اینها یک شگردی هم دارن اول میان آیاتی رو از قرآن خوششینی میکنن به عنوان مثال آیه 123 سوره توبه رو میاد انتخاب میکنه و میگه که اینجا نوشته که کفار همجوارتون رو باید بکشید یا میاد آیه 4 سوره محمد رو انتخاب میکنه و میگه که اینجا نوشته که گردن کفار رو باید زد گای و قادم آیه 33 سوره ماعده مورد استناد این افراد واقع میشه و میگن اینجا نوشته که هر کسی دشمن الله و رسول باشه باید کشته بشه اینها معمولا بعد از گلچین کردن آیات میان و روایات و تاریخ رو منگوله همین آیات میکنن و آخر سر هم جنگهای های سیاسی ای منطقه رو زمیمه و شاهد حرفای خودشون میکنن تا به این ترتیب به طرف مقابل القا کنن که بله اسلام مساوی ترور اسلام مساوی خشونت و جنگ حالا من در این برنامه از جناب آقای محمدی درخواست میکنم که با بررسی جامع آیات قرآن مسئله جنگ و خشونت از دیدگاه قرآن رو برای ما بازگشایی کنند تا صحت و سقم ادعاهای این افراد برای ما مشخص بشه در خدمت شما هستیم اسم الله الرحمن الرحیم ببینید برادر عزیز شنوندگان و محترم ملاک ما برای شناخت دین اسلام متن مقدس قرآن و کتب من قبله یعنی برای شناخت تعلیمات دین اسلام پیرامون مسئله جنگ و قتال ملاک ما تاریخی که سر همبندی شده نیست روایات و احادیثی که به محمد نبی نسبت داده نیست بلکه ملاک کلامی است که الله نازل فرموده یعنی متن مقدس قرآن و کتب منقبل ولا غیر پس این اولین نکته که دوستان باید مدنظر داشته باشند نکته بعدی اینه که من سوال میکنم آیا کشدار میلیونی که مسیحیت در جنگهای اول و دوم جهانی و بعد از اون مرتکب شد نقشه و راهنمای شناخت انجیله یا برای شناخت انجیل باید به مطالعه آیات انجیل بپردازیم کدومش ملاک شما برای شناخت تورات اعمال و رفتار صحیونیزمه یا برای شناخت تورات به آیات تورات مقدس رجوع میکنید خودمش به همین ترتیب تروریسم فرقی و مذهبی که امروز در منطقه جریان داره هیچ ارتباطی با تعلیمات قرآن پیرامون مسئله جنگ و قتال نداره خب قرآن میفرماید که وقتی پیامبران کلام الله رو کتب الهی رو به مردم ابلاغ می‌کردن کفار پیامبران رو به قد تهدید می کردن. چرا؟ مشخصه چون تعالیم و های متن مقدس بنیاد شک رو بساط واسطه و معصوم تراشی رو بسات سرکوب و استثمار مردم تحت لبای رو جمع می کنه. پس طبیعیه که کفار مقابل پیام آیات الهی عکس نشون بدن مثلا در آیه 68 سوری انبیا میبینیم که کفار میخوان امام ابراهیم رو بسوزونند شما در آیه 26 سوری قافل میبینید که فرعون میخواد موسی رو بکشه تا مبادا موسی دین مردم رو عوض کنه یا آیه 87 سوری بقره میفرماید که کفار بنی اسرائیل پیام بران الهی رو یا تکسیم میکردند. یا میکشن و حتی کفار زمان محمد نبی هم متابق آیسیوم سوری انفال نقشه قتل او رو کشیده بودند زمنان این تهدیدها فقط متوجه انبیاء الهی نبوده بلکه منطق کفار اساسا در برابر همه مبلغین کلام الله تهدید اخراج یا کشار بوده و هنوز هم ادامه داره حالا سمت دیگه قضیه منطق آیات الهیه مثلا آیه 99 سوره یونس خطاب به محمد نبی میفرماید که اگر الله میخواست همه ایمان می آوردن تو میخوای مردم رو به ایمان آوردن مجبور کنی خب پیام این آیه چیه پیام اینه که حتی محمد رسول الله هم اجازه نداره دین رو ایمان رو تعالیم الهی رو به مردم اجبار کنه حقنه نکنه در همین راستا به آیه 87 سوری اعراف دقت کنید ببینید که پیام الله به قوم شعب چیه تا من ترجمه این آیه رو برای شما قرائت کنم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحبون میفرماید و اگر گروهی از شما به آنچه من بدان فرستاده شدم ایمان آورده و گروه دیگر ایمان نیاورده اند صبر کنید تا الله میان ما داوری کند او بهترین داوران است خب این منطقه کلام اللهه میفرماید اگر گروهی به کلام الله ایمان وردن و گروهی کافر شدن ثبق کنید یعنی همدیگه رو مراعات کنید به پر و پای همدیگه نپیچید تا مناقشه و پیکار ایجاد نشه لذا منطقه کلام الله تهدید نیست منطق کلام الله دعوته به صبر و مراعاته منطق کلام الله تبلیغ دینه اون هم در صورتی که طرف مقابل تمایل به شنیدن داشته باشه در غیر این صورت شما به خیر و محمد سلامت آقای محمدی در آیه 216 سوره بقره فرموده که بر شما قتال واجب شده در حالی که جنگ کردن از نظر شما کریه و ناخوشاینده برادر عزیز قرآن کریم در مواردی دستور مشروط به جنگ و قطار رو ساده فرموده. اول اینه که فرموده با کسانی که با شما به جنگ می شما هم باید بجنگید این حکم اللهه. این رو دقیقا در آیه 190 سوری بغره می میتونید مشاهده کنید در ضمن واجی حرب در قرآن به فعل رباخاری هم اطلاق شده شما آیه 279 سوره بقره رو ملاحظه بکنید فرموده کسی که رباخوره اعلان حرب با الله و رسولش کرده و لذا رباخار از نظر قرآن محاربه من استدعا میکنم که دوستان به مسئله ربا توجه ویژه داشته باشند مورد دومی که قرآن دستور مشروط به جنگ و قتال در بارش سادر کرده وقتی که شما به خاطر ایمان به الله از دیانتون از شهرتون اخراج میشید فرموده با اخراج کنندگان بجنگید اگر آیات 39 و چهل سوری حج رو مطالعه بفرمایید دقیقا مشخصی که قرآن برای کسانی که از سرزمینشون به صرف ایمان به الله اخراج شدند مجوز مبارز مسلحانه رو داده سومین مورد اینه که قرآن در آیه 39 سوره انفال و 191 که سوره بقره فرموده فتنه و آشوب در دین از قتل نفس هم شدیدتره یعنی با کسانی که آمدانه و مقرزانه در دین الله فتنه و انحراف ایجاد میکنند باید بجنگید تا اینکه دین تمامش برای الله بشه چون دین انحصارن برای الله نه برای کسانی که به بهانه دین میخوان به سرکوب و استهمار و استثمار مردم بپردازند. اینها رو قرآن فرموده که با بجنگید تا فتنی که در دین ایجاد کردن از بین بره چهارم اینه که آیی 75 سوری نسان فرموده برای رهایی مستضافینی که در چنگال قاتلان و ستنکاران حسن هم باید جنگید و قطار کرد. چرا؟ چون قرآن در برابر متجاوزان به جان و مال و نبامیس و مردم به هیچ عنوان مماشات و تعارف نداره. حتی در آین هم سوری حجرات فرموده که اگر گروهی از مؤمنین دقت کنید اینجا صحبت از مؤمنین نه کفار اگر گروهی از مؤمنین با گروه دیگه جنگ کردند اول بینشو صلح ایجاد کنید اما اگر یک طرف حاضر به صلح نشد و خاص به ظلم و دسترازی ادامه بده فرموده که بر ضد متجاوز شما هم باید وارد جنگ و قتال بشید تا اینکه از ظلم و تعدی انصراف بده و صلح کنه پس ملاحظه می‌کنید که قرآن به هیچ عنوان با متجاوزان مماشات نداره حتی اگر مؤمن بوده باشند به طور خلاصه مطابق آیاتی که مطرح شد جنگ کردن با یک کسانی که آغازگری جنگ بودهاند و همچنین رباخاران دو با افرادی که مسلمون ها رو به خاطر ایمان از دیارشون اخراج میکنند سه با فتنهگران یعنی کسانی که آمدان تعالیم دین اسلام رو تغییر میدن و چهار با ستمکاران که توده مردم رو تحت ظلم نگه داشتهاند دستور و فرمان قرآنه آی محمدی تشیع و وقتی با هم جنگ میکنن یا جنگ های میان مسیحیت و یهودیت اینا همشون بر این گمانن که در راه خدا دارن می‌جنگن اینطور نیست برادر عزیز علت این که این همه فرقه مذهبی رنگارنگ به وجود اومده اینه که اینها کلام الله یعنی قرآن و کتب منقبل رو به تنهایی قبول ندارن فلیزا اینها جون رو برای احادیث و روایات تاریخ جعلی و فتواهای این اون دارن از دست میدن نه برای کلام الله وگرنه کلام الله که روشنه ببینید همین مسئله قتال آیات قرآنی همه زوایای برنامه قتال رو دقیقا توضیح داده برای همینه که ما بارها گفتیم قرآن با خود قرآن و کتب منقب قابل فهمه به عنوان مثال قرآن در آیه دوازه سوره توبه میفرماید فرماید فقاتل و اعمت الکف یعنی سران کفر رو بکشید برنامه قتال طبق تعلیم قرآن کشتن سرکرده ها یا اعمه شرک و کفره نه کشتن مردم مقلد و جاهل کوچه و بازار کشتن زن بچه کوچه و بازار قتل نفسه و مستوجبه عذاب جهنمه رحنمود دیگه قرآن در آیات 61 و 62 سوری انفال لحاظ شده می اگر قوای کفر و شرک تقاضای صلح کردن شما هم موظفی که با اونها سازش کنید حتی اگر گمان کنید که اینها با این پیشنهاد قص نیرنگ خود رو دارن الله می که شما سر کنید چرا که الله با شماست و شما رو در صورت نیرنگ اونها یاری میکنه پس تابه فرمان الله باشید یا در آیه حشروم سوری انسان فرموده که اسیر رو مثل یتیم و مسکین تاام دهید مراعات کنید نه اینکه اسیر رو شکنجه کنید یا سر ببرید شما اگر میخواید در راه الله قتال کنی بر اساس برنامه‌ای که الله در آیاتش مشخص کرده قتال کن نه بر اساس خود نمایی ها و هوای نفسانی خودت پس قرآن فرموده اسیر رو رعایت کنید رهنمود دیگه قرآن در آیه ششم سوره خجرات که اگر اخبار اطلاعاتی نظامی در جنگ به شما رسید بدون تحقیق پیرامون صحت و صغم اون خبر اقدامی نکنید تا مبادا موجب پشیمونی بشه اول تحقیق کنید بعد تصمیم بگیرید این دستور قرآنه همچنین میبینیم که در آیه 83 سوری نسا فرموده که از امر یعنی فرمانده نظامی خودتان فرمان کنید اما اگر فرمانده نظامی شما را به چیزی خلاف برنامی قطان در قرآن دعوت کرد از او اطاعت نکنید چرا که ملاک کلام اللهه که بر رسولش نازل شده یعنی قرآن نه هوای نفسانی فرماندهان نظامی مثلا اگر اولو یا همون فرمانده نظامی میل به کشور گشایی و دنیا داشت شما نباید از اون تبعیت کنی بلکه شما موظفه به اطاعت از کلام الله هستی بلاقش یک نمونه دیگه آیی 190 سوری بقره است که فرموده در جنگ و قطع تعدی نکنید خب این به چه معنیه؟ یعنی جنگ برای کشتن و منصرف کردن متعدیان به حریم مسلمانانه نه اینکه برای تجاوز به نوامیس و کفار و مشکین باشه این عراجیوی که فرقه های مذهبی ما تحت عنوان روایات تاریخ نمیشتن و بزرگترین اهانت ها رو به محمد رسول الله نسبت دادن اینها قابل اقماز و بخشش نیست که مدعی شدن پیامبر جنگ میکرد تا دختران کافر رو به تصرف خودش در بیاره در حالی که متن مقدس قرآن ازدواج بازن مشک و کافر رو حرام اعلام کرده. اینها همه نشون میده کسانی که این روایات رو سرهم کردن یکبار هم قرآن رو مطالعه نکرده بودند وگرنه چنین دروغ های شاختانی رو به رسول الله نسبت نمیدادند. من از دوستان تقاضا دارم، که آیات و قرآن رو دقیق مطالعه بکنن نه اینکه فقط به یک سوره بپردازید نه اینکه به یک آیه بپردازید و آیات دیگر رو مخفی بکنید حالا می میکنم برای جمع آیات هشت و نهه ممتحنه رو دقت بفرمایید تا ترجمهشو رو خدمتتون ارز کنم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 119. وأنهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون فرموده الله شما را از نیکی کردن و عدالت ورزیدن با کسانی که در دین با شما نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون نکرده اند من نمی کند بی تردید الله افراد عادل را دوست می دارد الله شما را تنها از کسانی باز می دارد که در دین با شما جنگیدند و شما را از خانه بیرون راندند و در بیرون راندنتان با دیگر همدستی کردند و هر کس با آنها دوستی کند آنان همان ستمگرانند لذا درسی که از این آیات میگیریم اینه اگر کافران و مشرکینی هستند که بنای جنگ و اخراج و فتنه در دین اسلام رو ندارند و بر ضد مسلمانها همدستی نمیکنند پس بر مؤمنین هم واجبه که نسبت به اونها عدالت و خیشتنداری و احترام را رعایت کنند این حکم اللهه و لازم الاجراست افرادی که میان و روی برخی آیات دست میذارن و میخوان اون آیات رو در انزوا بررسی کنن اینا به دنبال حقیقت نیستند بلکه معمولا یا افرادی بی و بی اطلاع از قرآن هستند یا یعنی اینه که به دنبال گیری و وارون جلو دادن حقایق قرآنند وگرنه قرآن با آیات متعدد مسئله قتال و جنگ رو به طور مبسود توضیح داده در پایان نتیجه که از این برنامه میگیریم اینه که کسانی که کافر هستند در سبیل تاغوت میجنگند اما کسانی که مؤمن هستند در سبیل الله جنگ می کند. اون هم بر اساس روشی که الله در متن مقدس قرآن مشخص نموده نه بر اساس هوای نفسانی خودشون همچنین دیدیم که در آیات قرآن کریم مسلمانان حق تعدی و تجاوز به حریم غیر مسلمان ها را ندارند مگر اینکه طرف مقابل بنای جنگ و اخراج رباخوری و سیطره بر امورات اقتصادی مؤمنی رو داشته باشه یا یعنی اینکه بخواد عمدن به ایجاد این در دین اسلام بپردازه انشاءالله که شنوندگان عزیز با مطالعه مستمر قرآن کریم زوایای بیشتری از موضوع جنگ و قطار رو تحلیل کنند تشکر میکنم از شما آقای محمدی از شما شنوندگان محترم هم می میکنم و شما رو به الله واحد قهار میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.